قم چند خوریز کارنا آمده پیش، رنج است نصیب مردم دورندیش، خوشباش و جهان تنگ مکن بر دل خیش که از خوردن غم غذا نگردد کم و بیش. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوس زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جاملتیف میسازد و باز بر زمین میزندش. می در قده انصاف که جا لطیف، در کال بده شیش روانیست لطیف، لایق نبود هیچ گران همدم من، یا ساغر کن گرانیست لطیف. ای چرخ فلک، ننان چناسی ننمک، پیوست مرا برهن سازی چو سمک، از چرخ زنی دو شخص پوشیده شود از چرخ زنی به هستوی ای چرخ فلک.